ورود به شما شنوندگان گرامی. اینجا توکیو است و صدای ما را از NHK World Japan به زبان فارسی میشنوید. امروز سهشنبه 9 ژوئیه برابر با 19 تیر ماه، من مرتاد صادق زاده از استودیوی جنشکی برای همکارم محبوبه‌ی رجبی تازه‌ترین خبرها را تقدیم شما می پیشبینی بینی می‌شود گرمای طاقت فرسا همراه امراه با رطوبت بالا در روز سهشنبه در بیشتر مناطق ژاپن ادامه یابد. سازمان هواشناسی ژاپن و وزارت محیط زیست این کشور برای بخشهایی از شرق، غرب و جنوب غربی ژاپن هشدار گرمازدگی صادر کردند. مقام هواشناسی می‌گویند تابش آفتاب در مناطق ساحلی اقیانوس آرام از کانتو تا غرب باعث افزایش دما خواهد شد. این مناطق از جبهه بارانزای فصلی که اکنون در نزدیکی شمال ژاپن مستقر است، فاصله دارند. پیش بینی می می‌شود حداکثر دمای روز در شهر اوواسه در استان میه به 37 درجه سانتیگراد، در مرکز توکیو شهر شیزوکا و شهر میازاکی به 36 درجه و در شهر فوکووکا به 35 درجه برسد. تگه روزهای گذشته چند نفر با علائم گرمازدگی جان خود را از دست دادند. به مردم توصیه می شود در صورت امکان از بیرون رفتن خودداری کنند. به طور مناسب از کولر استفاده کنند، آب بنوشند و هر از چندگاهی نمک مصرف کنند. همچنین به خانواده ها توصیه می شود به سالمندان و کودکان که در برابر گرمازدگی آسیب پذیر هستند توجه ویژه داشته باشند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران بار دیگر تاکید کرد که حمایت این کشور از روسیه و نیروهای ضد اسرائیلی در دوره ریاست جمهوری او تغییر نخواهد کرد این نامزد اصلاح طلب که خواستار بهبود روابط ایران با کشورهای غربی بود روز جمعه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، پزشکیان روز دوشنبه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد. پزشکیان از پیام تبریک پوتین تشکر کرد و گفت که ایران برای روابط دوستانه خود با روسیه اهمیت قائل است و بیتردید این روابط را تقویت خواهد کرد. ایران بر سر توسعه هسته خود و سایر مسائل با کشورهای غربی اختلافاتی داشته است این کشور در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصولگرای سابق همکاری با روسیه که آن هم با غرب در مورد وضعیت اوکراین اختلاف نظر دارد را تقویت کرده است تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که پزشکیان با ارسال ای به حسن نصرالله رهبر گروه پیکارجوی شیعه الله لبنان از وی برای پیام تبریک تشکر کرده است. پزشکیان تمایل خود را برای ادامه حمایت از نیروهای ضد اسرائیلی اعلام کرد. ناظران میگویند که ایجاد تعادل بین پایبندی به برخی از های خارجی و نظامی رئیس جمهور قبلی و تلاش برای بهبود روابط با غرب احتمالاً برای رئیس جمهور آینده ایران دشوار خواهد بود. ارتش روسیه حمله گسترده ای را در سراسر اوکراین انجام داده است که در اثر آن 37 نفر کشته شدند. در این حمله یک بیمارستان کودکان در کیف به شدت آسیب دید. مناطقی از جمله کیف، پایتخت اوکراین، و استانهای شرقی دنیپروپتروفسک و دونتسک روز دوشنبه به شدت مورد حمله قرار گرفتند. در کیف، ساختمانهای آپارتمانی و ساختمانهای دیگر در هفت منطقه در مرکز این شهر مورد اصابت موشک قرار گرفتند. مقامات می‌گویند 22 نفر در آنجا کشته و بیش از 70 نفر دیگر زخمی شدند. بیمارستان کودکان اخمات دید در کیف نیز مورد حمله قرار گرفت. خدمات اورژانس دولتی اوکراین اعلام کرد که این حمله دو کشته و بیش از پنجاه زخمی برجای گذاشته است. مقامات امنیتی اوکراین روسیه را به دلیل حمله با یک موشک کروز به این بیمارستان محکوم کردند. وزارت دفاع روسیه در بیانی که روز دوشنبه در رسانه های اجتماعی منتشر کرد، اعلام کرد که نیروهای روسیه تأسیسات صنایع نظامی و پایگاه‌های هوایی اوکراین را با سلاح‌های دقیق دوربرد هدف قرار دادند این وزارتخانه افزود که این اقدام در پاسخ به تلاش اوکراین برای حمله به تأسیسات انرژی در داخل روسیه است نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که سی موشک از 38 موشک پرتاب شده روسیه را رهگیری کرده است آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل حمله گسترده روسیه در روز دوشنبه در سراسر اوکراین که منجر به آسیب جدی به یک بیمارستان اطفال در کیف شد را محکوم کرد. گوترش در بیانیه‌ای که از طریق یک سخنگوی خود منتشر کرد گفت که حملات موشکی به بیمارستان کودکان و یک مرکز پزشکی دیگر خصوصا شوک کننده است. او گفت طبق قوانین بین بشر بشردوستانه هدف قرار دادن غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی ممنوع است هرگونه حمله از این دست غیرقابل قبول است و باید فورا پایان یابد شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سهشنبه به درخواست فرانسه و کشورهای دیگر درباره حمله اخیر یک جلسه اضطراری برگزار خواهد کرد روسیه در این ماه ریاست این شورا را بر عهده دارد پیش بینی می شود که رهبران ائتلاف ناتو و شرکای آن در منطقه اورژانوس های هند و آرام برای تقویت همکاری در مقابله با حملات سایبری و سایر موضوعاتی که می تواند بر امنیت تاثیر بگذارد، توافق کنند. کیشیدا نخست وزیر ژاپن و رهبران کره جنوبی، استرالیا و نیوزلند قرار است در روز پنجشنبه در نشست ناتو در امریکا شرکت کنند. منابع دولتی ژاپن میگویند که پیش بینی می شود که این رهبران با افزایش همکاری در پاسخ به مسائل مربوط به حملات سایبری، اطلاعات جعلی و فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی موافقت کنند. کچیدا امیدوار است که روابط قوی‌تر با ناتو به صلح و ثبات در اطراف ژاپن منجر شود. زیرا او معتقد است که با توجه به اقدامات روسیه و چین، امنیت اروپا و آسیا جدایی ناپذیر هستند. کشیدا قرار است پس از نشست سران ناتو در واشنگتن برای گفتگو با اولاف شولتس صدر اعظم آلمان به آن کشور سفر کند و اینکه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مراسم یادبود سیومین سالگرد در پدر بزرگش کیم ایل سونگ که به عنوان گذار این کشور شناخته می شود شرکت کرد. تلویزیون مرکزی دولتی کره گزارش داد که این مراسم روز دوشنبه در میدان کیم ایل سونگ در پیونگ آنگ برگزار شد. کیم با شلوار مشکی در این مراسم شرکت کرد. یکی از مقامات ارشد حزب حاکم کارگران در سخنرانی خود انتقال موروسی قدرت در این کشور تگ سه نسل را مورد ستایش قرار داد. این مقام خاطر نشان کرد که این سنت منحصر به فرد کره شمالی است که در آن ایدئولوژی رهبرش به نابترین و کاملترین شیوه منتقل می شود. نشانهایی که فقط تصویر کیم جونگ برای آنها نقش بسته است و ماه گذشته برای اولین بار به تایید رسیدند. ببخشید به تایید رسیدند. نشانه ای از اعتماد کیم به حکومت خود تلقی می شوند که بیش از ده سال به طول انجامیده است. های کره جنوبی گفتند که این مراسم یادبود به شکل متعارف برگزار شد علیرغم زنیها مبدلی بر اینکه ممکن بود با توجه به تلاش‌های عجولانه کیم برای نمادسازی از خود در ابعادی کوچکتر برگزار شود کارشناسان می‌گویند که این ممکن است تلاشی از سوی کیم برای مشروعیت بخشیدن به این نظام موروسی و تقویت اقتدار خود باشد پایان پخش اخبار از NHK World Japan است توکیو